ژاپنی اثر روپون و سوکه آکوتاگاوا، ترجمه دکتر توسی هایری و احمد شامرو. این داستان گنج چهارم. یکی بود یکی نبود، توی یه جنگل بزرگ تا دوست بودند که داشتن سر تقسیم یک جفت کفش پاره، یه شنل پر وصله. و یک شمشیر کهنه زنگ زده با هم می کردند. اولی گفت این شنلو رو من برمیدارم. دارم دومی گفت برو پیه کارت اول اون شمشیر رو بذار وسط کی به تو گفته کفش رو برداری سومی گفت دست کم اون کفش ها مال من باید تو رو دوزد واقعی دونست چون که حتی سر ما رو هم میخوای کلا بذاری اولی گفت قبلا هم خوب فکراتو بکن ببین کدوم یکی رو دلت میخواد برداری من خودم این شنل رو برمیدارم دومی گفت هیون خیال میکنی من میگذارم که تو اونو برداری اولی گفت ها جرأت داری تو روی من وایسی مگه نه اینکه تو خودت هم عوض شمشیر رو برمیداری سووامی گفت تو شنل رو برداشتی یه چیزی هم خودتو طلبکار میدونی خلاصه بگو مگو بین دوزده در گرفته بود و داشتن توی سرکله خودشون میزدند که ناگهان شاهزادهی که سوار اسب بود و داشت میرفت دختر پادشاه اوشه رو خواستگاری کنه از اونجا گذشت دید دارن با هم دعوا میکنند عصبشو نگه داشت و گفت آهای آهای نگاه کنید ببینم چه خبرتونه دعوا میکنید دوزده اول گفت تقصیر ما نیست تقصیر اون مردکه شمشیر منو برداشته حالا میخواد شنل رو هم بگیره دوز سهم گفت ارباب دروغ میگه تقصیر خودشه این شنلی رو که میبینید برداشته مال منه دوز دوم گفت هر دو تا اینا دروغ میگن اینا هر دوشون از اون دزدای قهارن اینایی که میبینید برداشتن همش مال منه اولی گفت مزخرف میگه دومی گفت دروغگوی لافزن میخوای حق ما رو پامال کنی؟ بله نزدیک بود دوباره به جان همدیگه بیافتند و کتککاری کاری کنند کشاستاده از اسبش پایین اومد اونها رو هم از هم سوا کرد و گفت سب کنید ببینم این چیزایی که شما سرش دو را انداختی چی هست؟ یه شنر وصله وسله یه کفش تیکه پاره یه شمشیر شکسته و زنگ زده اینا که ارزش نداره آدم به خاطرش کتک کاری کنه نوزه دوم گفت عجب پس خبر ندارید این شنه رو که میبینید هر وقت آدم به دوشش بندازه از نظر نظرها قیب میشه و دیگه کسی نمیتونه اونو ببینه نوزه اولی گفت با این شمشیر که شما خیال میکنید یه تیکه آهن و بیشتر نیست دوستن نار نمیارزه اگه به کوه فولاد اشاره کنی از وسط نصف میشه. سومی گفتش حالا بشنوید از صندلا این صندلای پاره پوره رو همینقدر که آدم بپوشونیت کنه به هر شهری که دلش بخواد میرسه شامساده که این رو از دوست ها شنید خیلی تعجب کرد گفت پس دعوای شما ها زیادم بیالت نیست این چیزا که در نظر اول خیلی کهنه و بیارزش به میاد هر کدوم برای خودش گنج پر قیمتیه. با وجود این بهتره شماها هر کدومتون به داشتن یکی از این چیزا راضی بشید و بیخود بجون هم نپرید. دوز دوم گفت: منم به این کار زیاد بیمیل نیستم. مونتاها اون آدمی که شمشیر رو صاحب بشه همیشه ممکنه به اون دو نفر دیگه حمله کنه و شنل و کفش رو ازشون بگیره. دوز اولی گفت: مزخرف میگی. اون کسی که شنل رو برداشته چون میتونه از نظرها غیب بشه؟ ممکنه بیاد شمشی رو و سندل رو هم برداره و فرار کنه دوز سوم گفت اینها هردوشون هر دوشون چرن میگن اگه اون کسی که صندل رو برداشته شمشیر رو شنل رو هم بلند کنه و به یه شهر دوری ببره دیگه چطور میشه به گردش رسید؟ شاهزاده که دید اونها هر تاشون بد نمیگن گفت هر تون حق دارید بسیار خب حالا یه پیشنهاد دیگه به شما میکنم دلتون میخواد این شنل و سندل و این شمشیر رو به من بفروشید؟ دوزده اول گفت بله بله اینطوری بهتره اما باید با هم مشورت کنیم روشو کرد به اون دو تا دوزده دیگه و گفت شماها چه نظری دارید؟ موافقید که اینا رو به ارباب بفروشیم؟ دوزده سوم گفت من حرفی ندارم این چیزا هر انداز قیمتشون زیاد باشه به این نمیارزه که رفاقت چندین ساله ما رو به هم بزنه نوزاد دوم گفت منم مخالف نیستم منتها باید ببینم این ارباب در عوض به ما چی میده شاهزاده که به حرفهای اونا گوش میداد گفت من فکرشو کردم که عوض این اشیا به شما چی بدم عوض این شنل شنل خودم رو به شما میدم ببینید شنل خیلی قشنگیه تمامش هم جواهر دوزی شده دوزا گفت در عوض صندل چی میدی شاهزاده گفت عوض کفشام کفشامو میدم تماشا کنید. با طلا نواردوزی شده دکمه هاش هم از الماسه روزا گفتن اینم قبول ولی عوض شمشیر چی میخوای بدی؟ شاهزادگی گفت معلومه عوض شمشیر هم شمشیر خودم رو میدم که تماما با الماس و جواهر زینت شده و گرانبهاترین شمشیر دنیاست حالا به این معامله راضی هستین یا نه؟ دزد دوم گفت من حرفی ندارم حاضرم شنالم رو با شنال شما عوض کنم دزد اولم گفت منم برای عوض کردن صندلا موافقم دزد سومم گفتش حالا که شما حرف ندارید منم حاضرم شمشیرم و با شمشیر ارباب عوض میکنم شاهزاده خوشحال شد و گفت بسیار خوب عوض کنیم اینو گفت و شمشیر و شنل و کفشاشو در آورد داد به دزدان و شمشیر شکسته و شنل وسلیه‌ای و صندل پاره‌ها از اونها گرفت پوشید و سوار اسبش شد و خدافظی کرد و راه افتاد همین که از اونجا دور شد دزدها قه قه قه خندیدن دوز سوم که از اون دو تا دیگه قالتوغ‌تر بود گفت چه معامله خوبی کردی. هیچ وقت فکر نمی کردم سندل من یک روز به کفشای به این قشنگی تبدیل بشه آخ نگاه کنید تمام دوگیمه هاش از الماسه نوز دوم گفت شنل منو تماشا کنید قشنگتر این شنلای دنیاست با این شنل حالا دیگه درست شکل اربابا شدم مگه نه؟ دوز اولم گفت شمشیر منو هم ببینید حالا دیگه هرچی بگید میارزه دستش که تمام از تلاست یعنی توی تمام دنیا شده که کسی رو به این سادگی گول بزنن این شاهزاده چقدر ساده لوح بود به باره هر ستا قاه قاه قاه خندیدن و خندان و شادی کنن را افتادند و رفتند حالا ما رو به حال خودشون بذاریم و بریم سراغ شاهزاده. ببینیم سر او چه اومد شهزاده وقتی از دوست ها جدا شد تو دلش میگفت عجب آدم های ساده بودن گنجایی به این گرون قیمتی رو حاضر شدن به مفت از دست بدن شنل و کفش و شمشیر من هر چقدر قیمت داشته باشه قیمتش صد یک قیمت این شمشیر شکسته بود این شنل پاره و این سندل تک تکه تکه نیست همینطور که این فکرها از سرش میگذشت رسید به یک کاروان سرایی گفت خوبه اینجا چیزی بخورم. کمی خستگی بگیرم و دوباره راه بیفتم رفت تو یه گوشه نشست و دید کاروان سرادار میگه بله انگار بالاخره دختر پادشاه شوهر خواهد کرد. یکی از دهاتی گفت بله منم اینو شنیدم. میگن قراره با پادشاه زنگیهای آفریقا عروسی بکنه. دهاتی دوم گفت اما من شنیدم که میگفتن دختر پادشاه از اون بعدش میاد. دهاتی اولی گفت اگه از اون بدش میاد که زنش نمیشد سرادار گفت من میدونم دختر پادشاه چرا زن پادشاه زنگیا شده علتش اینه که پادشاه زنگیا تا گنج ها داره گنج اول صندلای هزار فرسنگه گنج دوم شمشیر فولاد شکنه گنج سومم شنل جادوه که آدم تا بهپوشه از نظر پنهان میشه شاید زنگی این گنج رو به پادشاه هدیه کرده، اونم خوشش اومده، قبول کرده که دخترش رو به او بده. نهاتی دومی گفت درسته، اما دختر خودش ابدا راضی نیست که زن پادشاه زنگی ها بشه، پدرش مجبورش کرده. نهاتی اولی افسوس خورد و گفت تفلک، هیچکس نیست که به فکر نجاتش باشه. کاروان سرادار گفت البته معلومه که بین شاهزادههای جوان شهرهای دیگه خیلی ها هستن که واله و دختر پادشاه هند حاضرن حلقه قلامیش رو به گوش بکشن منطقه ها جون هیچ کدوم اونها جرأت نمی که با پادشاه زنگیا در بی که دست روی دست گذاشتن و فقط تماشا می کند دومی گفت از اون گذشته پدر شاهزاده خانم که فقط فکر پول و ثروته از ترس اینکه مبادا شبانه بیان و دختره رو بدوزن اونو توی قلعه حبس کرده که یه اجده ها شب و روز دم دروازش خوابیده و از دختره محافظت میکنه کاروان گفت این محملات چیه که میگی یه کلاخ چل کلاخ کردن یه سرواز و کردن یه اجده ها دهاتی اولی گفت اگه من جادوگری بلد بودم اولین کسی بودم که میرفتم شاهزاده خانم رو نجات میدادم کارمونسرا گفت معلومه منم میرفتم اگه جادوگری بلد بودم و از اونجور کارها سردر میآوردم تا تو بخوای خبر بشی من شازد خانم رو در برده بودم همه دهاتا از این جواب کارمنسرا خندیدن. اما شاهزاده که دید نمیتونه اونجا بشینه و اونها درباره دختر پادشاه به اون ترس حرف بزنن جلو رفت و گفت های اینقدر پرچونگی نکنید اون کسی که خدا خواسته شازاده خانم رو نجات بده اینجاست دهاتی‌ها از تعجب دهانشون بازموند گفتند شما شما شاهزاده گفت معلومه اگه تمام زنگی‌های دنیا جمع بشن و به کمک پادشاهشون بیان یک نفرشون سر سالم به گور نخواهد برد. کاربون سرادار گفت حرفی نیست ولی آخه میگن پادشاه زنگی ها سه تا گنج بینظیر داره. اولیش یه جفت صندله که اسمشون میگن صندلای هزار فرسنگ. شاهزاده حرف اون رو برید و گفت بله بله صندلای هزار فرسنگ و شمشیر فولاد شکن و شنل جادویی ولی اینها رو منم دارم نگاه کنید اینا همون صندلاست اینم شمشیر فولاد شکن اینم شنل جادویی این گنجایی عینا مثل گنجای پادشاه زنگیا ها. ها از تعجب دهنشون وا بود. به هم نگاه کردن یکی پرسید همین صندل پاره ها اون یکی دیگه گفت همین شمشیر قرازه می گفت همین شنل تکه تکه کاروان سرادار هم گفت عجب این سندل ها که هیچیش به پا بند نیست شاهزاده گفت بله هیچیش به پا بند نیست با وجود این به یک خیز آدم رو هزار فرسنگ راه میبره کاروان سرادار گفت بی کم و زیاد شازاده گفت معلومه که باورت نمیشه بسیار خوب الان نشونت میدم بود اون در واسکون ببینم کارمون سرادار که یواش یواش داشت باور میکرد دوید و رفت در چهار تاق باز کرد شازاده گفت خب حالا تا چشم هم بزنی من توی هزار فرسنگی اینجا خواهم بود گارمان سرادار دامن شاهزاده رو چسبید و گفت اما تو رو خدا پیش از رفتن پول نونی رو که خوردی بده شازاده گفت چه فرق میکنه من به همون سرعتی که میرم به همون سرعتم هم بر میگردم سوقاتی چی میخوایید بیارم؟ انارای هندوستان؟ خربوزه آفریقایی؟ انجیرای عربستان؟ یالا انتخاب کنید کاروان سردار گفت با اینقدر که دلمون میخواد پریدن تو رو تماشا کنیم به فکر سوقاتی نیستیم یالا نشون بده ببینیم شاهزاده گفت باشه یک دو سه این رو گفت و از جا جست اما قبل از اینکه حتی بتونه خودش رو به تره کاربون سر برسونه آنچنان به زمین خورد که جماعت ادعادی‌ها از خنده رود وبر شدند کاربون گفت من از اول میدونستم که این مرد دروغ میگه داتی اول گفت سه گزم نتونست بپره اون وقت از هزار فرسنگ طوری حرف میزد که آدم باورش میشد دهاتی دومی هم به مسخره گفت نه پرید؟ عجب خیلی هم خوب پرید منتها از بس تند رفت و تند برگشت شما متوجه نشدید همه با صدای بلند خندیدند شاهزاده از زمین بلند شد خودش رو تکند و خواست از در بیرون بره که کاروان سرادار دامنش رو دوباره چسبید و گفت ارباب پول نونی رو که خوردی بده بعد هر جا دلت میخواد برو. شاهزاده چیزی نگفت، چور اوقاتش بی اندازه تلخ شده بود. دست کرد به جیبش و سکه ای در آورد به طرف او انداخت و دهاتی دومی برای اینکه اونو دست بندازه گفت: "سوغاتی ما چی شد؟" شاهزاده که اینو شنید، دست به قبضه شمشیر برد و گفت: "چی گفتی؟" اما دهاتی که اینو دید، به التماس افتاد و گفت: "ارباب من به شما جسارتی نکردم. اون وقت روش رو به دیگران کرد و گفت اگه شمشیرش پولاد رو نتونه بشکونه دست کم سر منو که میتونه مثل کد و ببره. کاربون دار که دید نزدیک آشوب بشه پیش شاهزاده رفت اون رو تسلی داد و گفت قصه نخورید، عصبانی نشید شما هنوز جوونید و بهتر برگردید پیش پدرتون شما غیرت خودتون رو به خرج دادید منطقه معلومه که نمیتونید با پادشاه زنگیا در بی بهترین کاری که تو این جور موقع آدم میتونه انجام بده اینه که بیخود و بی مشت به سندان نکوبه. دهاتی هم که آروم شده بودند حرف کاروانسرها رو تصدیق کردند و گفتند بله بله حرفمونو بشنوید و از این کار چشم بپوشید. شازاده گفت منو ببین که فکر میکردم همه کاری از اختم برمیاد. ام‌باخ شروع کرد به گریستن و بعد گفت حتی پیش این دهاتی آبروی خودم رو ریختم کاش زمین دهام باز میکرد و منو فرو میبرد. دهاتیا دلشون سوخت و خواستن چیزی بگند. اما شاهزاده که دوباره به خشم در اومده بود فریاد زد حیوان‌ها هر دل دلتون میخواد منو مسخره کنید اما بدونید که من شاهزاده خارون رو از چنگ پادشاه زنگیان نجات میدم اگه این صندلا نتونستن منو به هزار فرسنگی ببرن در عوض شنل و شمشیرم رو هنوز دارم. بدونید و آگاه باشید که بدون اینها هم میتونم اونو نجات بدم. اینو گفت و همونطور که خشمگین از کاروانسرای بیرون اومد اسبش رو سوار شد و به راه افتاد. رفت و رفت تا رسید به قصری که میگفتند دختر پادشاه اونجا زندانیه. چنان خشمگین بود که حتی یک دقیقه هم برای رفع خستگی نشنیش از اصبش رو پشت قصر به چرا سرداد. شنر را به دوش انداخت و از دروازه قصر بدونه که کسی ازش بپرسه کیه و چیکار داره داخل شد. باقی دید شکل بهشت. پر از گل و گیاه و درختان بید و سرو و میوه. به هر طرف نگاه کرد تا چشمش به استخری افتاد که فواره بزرگی از وسط هون میجوشید. به کنار استخر رفت. مشتیاب به سر و روی خود و گفت از قرار معلومی شنل به عکس صندلا ازش کاری ساخته است. چون که از وقتی وارد قصر شدم هیچ از قرارول و یساول ها متوجه نشدم. گمان میکنم با این شنل به راحتی بتونم برم توی قصر رو اتاق دختر پادشاه رو پیدا کنم. همینطور که داشت با خودش حرف میزد، ناگهان چشمش افتاد به طرف دیگه استخر. شانساد خانم رو دید که توی باغ قدم میزنه. اونقدر خوشگل بود که آدم خیال می کرد ماه برای تفرج زمین از آسمون پایین اومده. شاهزاده که اونا دید عشقش یکی بود هزار تا شد اما شاهزاده خانوم قلب کوچولوش پر از قصه بود اشک مثل سیل از چشمای قشنگش جاری بود آه میکشید و میگفت ای خدای آسمونا ای خدای عادل و مهربان محال این دختر بی‌نوای تیر و روز رحم کن پدرم منو برای این زنگی نفرت انگیز نامزد کرده توی همین هفته این سیاه بدهیکل میاد که منو با خودش ببره آفریقا. ای خدای زمین و آسمون من از این زنگی بدریخ دلم به هم میخوره. چطور ممکنه که من زن اون بشم؟ چطور ممکنه؟ آفریقا فقط جای شیر و حیوانای درنده است. من چطور میتونم تو آفریقا زندگی کنم؟ نشست روی چمنای لب استخ رو حالا گریه نکن که کی گریه کن. با خودش میگفت خدایا چقدر دلم میخواست تا آخر عمر توی همین قصر بمونم و به جای اینکه اون زنگی بعد حیبت در گوشم حرفای عاشقانه بزنه زمزمه این فواره ها رو گوش بدم که به این زیبایی از وسط گلای سرخ میجوشه. خدایا من چقدر بدبختم؟ من چقدر بی و تیر و روز و بیچارم. اما شاهزاده که از دیدن روی دختر اختیارش از دست داده بود ناگهان از صدای های های گریه دختر انان از کفش به در رفت و با صدای بلند با خودش گفت هان مرد نیستی اگر بذاری پادشاه زنگیا ها دست به طرف این دختر دراز کنه اگه به قیمت جونت هم شده باشه باید اونو نجات بدی نختر که هرگز خیال نم کرد تو این وشه غیر از خودش کسی دیگه ای هم وجود داشته باشه یکی خورد از جا بلند شد و گفت کی هستی؟ شانزاده که در چند قدمی دختر استاده و شنل وصلی کهنه رو به دوشش انداخته بود و خیال میکرد چون شنل به دوششه کسی اونا نمیبینه فکر کرد حالا که دختر متوجه او شده برای اینه که با خودش بلند حرف زده اینکه این بود که با خودش گفت ای وای بلند حرف سدم این نازنین متوجه شد نقطه از حرف اون تعجب کرد گفت چی بلند حرف زدی مقصودت چیه اما بعد از این حرف به پای شاهزاده نگاهی کرد و گفت اما با اینکه لباس پاره و کفشای کهنه داره و شمشیره شکسته به کمر بسته معلومه که از خاندان بزرگیه چه مرد قشنگیه صورتی به این زیبایی رو هیچ نقاشی نمیتونه بکشه شاهزاده با تعجب گفت ای بانوی عزیز مگه تو میتونی صورت منو ببینی شاهزاده خانم گفت معلومه چرا نتونم ببینم شاهزاده گفت افسوس این شنل رو هم میتوانید ببینید شاهزاده خانم از دیدن رخساره تابان شاهزاده و از شنیدن حرفهاش که به نظر اون معنی درستی نداشت قم و خودش رو فراموش کرد ای دل قافل دیدی حالا غلامان پدرش رو صدا خواهد کرد تا تو رو با تازیانه بزنن و توی سیاه زنجیرت کنند تا بیای و اصل و نصب خودت رو به اونها ثابت کنید پادشاه زنگی ها با او عروسی کرده و اونو با خودش به آفریقا برده شاهزاده خانم که سکوت اونو دید دوباره گفت ای جوان زیبا چرا از من میپرسی که شنرت رو میبینم یا نه مگه توقع داشتی که من کور باشم شاهزاده گفت ای بانوی من هرچه چه بادا باد بدان و آگاه باش که مرا در راه فریب دادم گفتند هر کس این شنل رو بپوشه پوشه نامرعی میشه. من اون رو با جبه زردوزی شده خودم به همین علت عوض کردم. حالا تو میگی که اونو میبینی و حتی صورت منو هم مشاهده میکنی. وای بر من بیچاره. شهازاده خانم گفت شنلی که میگی مال پادشاه زنگی هاست. شهازاده گفت آخه گفتن که این شنل هم مثل شنل اوست. شهازاده خانم گفت جوون مگه نمی بینی که تو رو نامرعی نکرده؟ شانساته که هنوز نمیخواست باور کنه دزدان میان جنگل فریبش دادن؟ گفت ولی آخه موقعی که به داخل قصر می آمدم نامرعی بودم دلیلشم اینه که هیچ کدوم از قرابولان خاصه پدرت که شب و روز مشغول نگهبانی هستن منو ندیدن حالان که من از جلوی اونها گذشتم و میتونستم منو بگیرن و به زندان پادشاه ببرن شاهزاده خانم خنده زیادی کرد و گفت جوون علتش واضحه این شنل که بردوش داری آنچنان کهنه و مندرسه که قراولان خاصه تو رو به جای اعلاءی باغي و یکی از سربازان آشپزخانه گرفتند شاهزاده معیوس و بینوا دستهاش رو به پهلوهاش ول کرد آهی کشید و گفت عمله سرباز ای داده بر برمن پس این شنلم مثل صندلاست. شاهزاده خانم گفت صندل‌ها؟ شاهزاده گفت بله، صندلای هزار فرسنگ. دختر گفت یعنی مثل صندلای پادشاه زنگیا. شاهزاده گفت بله ای بانوی نازنین. اون مرد عیاری که صندلا رو به من داد می گفت با اونها به یک چشم به هم زدن میتونم به هر کجای دنیا که بخوام برم. اما بعد از اون که اون ایار صندلا رو با کفش های علمان من عوض کرد و رفت اونها رو امتحان کردم و دیدم که سه قدمم نمیتونم بپرم اما نگاه کنید این شمشیر هنوز ازش کاری ساخته است با این شمشیر به یک اشاره کوه پولاد از هم میدره دختر گفت اون رو امتحان کردی؟ شاساده گفت ای نازنین این شمشیر رو باید فقط روی گردن و اون افریت منحوسی که پا را از گریم خودش درازتر کرده و خیال خام همسری تو رو در سر میپرورانه امتحان کنم دختر از زوق عشق توی چشماش پر شد دستهاش رو به طرفش آزاده دراز کرد گفت ای خدای مهربون میدونستم که تو این آخرین لحظهها مرا تنها نمیگذاری ای جوان زیبا بلات بجونم پس تو برای نجات من اومدی پس تو اومدی که این افریت سیاه رو ادب کنی و سر جاش بنشونی آفرین به تو ولی بیا و نصیحت منو بشنو ای جوون از جوونی و زیبایی تو می ترسم حیفه که تو نازنین خونتو در راه من بریزی شاهزاده گفت ای بانوی عزیز خونه هزار مرد همچون من فدای یک تار موی تو محال تا سر از گردن این افریت جدا نکنم از کنار تو به کناری بروم اما هنوز حرف شاهزاده تموم نشده بود که ناگهان از پشت سر دختر صدایی برخاست. همین که شاهزاده و دختر نگاه کردند، پادشاه زنگی ها دیدند که روی زمین فرود اومد و گفت سلام بر ملکی زیبای شهر من ببینید که چطور به یک چشبه هم زدن از خاک آفریقا به اینجا اومدم آیا میدانید درباره این سندل ها چه تصمیمی گرفتم؟ البته معلومه که پادشاه آفریقا میخواست بگه که این صندلا رو با اینکه قیمتش به تنهایی با یک گنج برابره میخواد با شنل و شمشیر خود در عوض دختر به پدر رو او تقدیم کنه. اما دختر با سردی به پادشاه زنگیا گفت: انشالله که تصمیم گرفتید دوباره اونها رو بپوشید و به شهر خودتون برگردید. پادشاه زنگیا که هنوز نمیدونست دختر تا چه حد از اون متنفره گفت خیر ای ملک ای زیبا تصمیم گرفتم که امروز رو در سایه محبت شما در این قصر زیبا بگذرونم اما راستی این سیاهی کیست شاهزاده گفت ای سیاه ملعون گمان میکنم امروز زبان در دهان تو سنگینی میکند سیاهی چیست من ای هستم که صد چون تو پادشاه را به قلامی قبول نمی اگه راستش رو بخوای توق بردگی شاهزاده خانم برگردن دارم اومدم به تو بگم که بدونی تا زنده نخواهم گذاشت نگاه چپ به این دختر بندازی راه تو بگیر و برو بدون که نخوای تونست به یک موی گندیده این شاهزاده خانمم دست بزنی پادشاه زنگیها که اینو شنید بدون اینکه کوچکترین اثری از خشم یا ناراحتی به چهرش پیدا بشه با ادب و حرمت زیادی گفت ای جوان شیردل امیدوارم در همه عمر پیروز و کامیار باشی اما بگو ببینم آیا شنیده ای من سه بزرگ در اختیار دارم شاهزاده که از ادب پادشاه زنگی ها جسارت بیشتری پیدا کرده بود گفت ای پادشاه آفریقا منظور تو صندل و شنل و شمشیره بسیار خوب درسته که من با صندلای خودم سه قدمم نمیتونم بپرم اما بدون که تا شاهزاده خانم با منه نه تنها هزار فرسنگ و دو هزار فرسنگ بلکه به پیمودن دو قدم دورتر از اون نیز حاجتی ندارم به شنل هم فقط همینقدر ممکن بود احتیاج داشته باشم که منو به خاک پای شاهزاده خانم برسونه و این عمل انجام شده چون همونطور که میبینی من اکنون در برابر شاهزاده خانمم و این کار به همت همین شنل پاره و فرسوده یکی به دوش منه منو سرباز آشپزخونه و عمل باغ نشون دادن اگر نتونست مرا از چشم ها پنهان کنه لاعقل شاهزادگی مرا به خوبی پنهان کرد. پادشاه زنگیا ها گفت بسیار خوب. حالا بد نیست خاصیت شنل منو ببینیم. اینو که گفت شنل رو که تا اون وقت روی دستش انداخته بود برداشت و روی دوش انداخت و ناگهان از نظر پنهان شد. شاهزاده خانم آهی کشید و گفت خدایا. هر یک لحظه که او رو نبینم سعادتی حساب می‌کنم. شاهزاده گفت ای زنید. چه سعادتی بود اگر این شنل از آن ما میشد. هر دو زیر اون پنهان میشدیم و به اتفاق به شهر من می و از این سیاه دیف سیرت نجات پیدا می پادشاه زنگی که حرف شاهزاده رو شنید با خشم و عصبانیت شنل را از دوش برداشت و همین که دوباره آشکار شد گفت بله این شنل در واقع برای شما دوتن ساخته شده چون که وجود اون برای من چیزی بی و بی نتیجه است این رو گفت و شنل رو روی چمن پرتاب کرد شمشیر رو از نیام بیرون کشید و دوباره گفت بله شنل چیز بی بود اما از این شمشیر جادویی که کار دست آهنگران و جادوگران آفریقاست هنوز کاری برمیاد یک لحظه به دختر و شاهزاده نگاه کرد و بعد به شاهزاده گفت ای جوان شما به خوشبختی من چشم تمع دوخته اید. شما نمیدونم که از کجا اومدید. تا مایه سعادت و کامیاری من رو از چنگم بیرون بکشی. پس از جوان شما به دور خواهد بود. اگر به من اجازه ندهید که از حق خودم دفاع کنم. شنیدم گفتید از شر این سیاه دیف سیرد. اما نگفتید که چرا مرا دیف سیرت میخونید؟ فقط به این خاطر مرا دیف سیرت میخوانید که و شاهزاده خانم خانم محبوبی را که دوست میدارم برای همسری خود خاص کاری کردم. بسیار خب با وجود این من از بابت دشنامی که به من داده ای هیچ گونه حقی برای خود قائل نمیشم. اون رو نشنده میگیرم و فراموشش میکنم. اما از بابت اینکه میخواید مانع سعادت من بشید اجازه بدید مثل هر مرد دیگه از خود دفاع کنم این شمشیر که به یک اشاره میتونه کوهی از فولاد رو چون کدویی بدونیم کنه برای سوراخ کردن قلب شما یا بریدن گردنتون مسلمه که قدرت بیشتری داره شاهزاده خانم که دید الان پادشاه زنگیا شاهزاده رو به قتل برسونه سینه خود را جلوی شمشیر اون سپر کرد و شاهزاده رو در پناه خود گرفت به پادشاه زنگیا گفت ای مرد نیرومند. اگر شمشیر تو جادویه میتونه کوهی از پولات رو به یک اشاره از هم بدره قتل این شاهزاده به دست شما در همه جهان جز یک نامردی چیز دیگهی به شما نخواهد رفت پیش از اون که مبارزه بین شما آغاز بشه معلومی که شاهزاده کشته خواهد شد و با این شمشیر که شما دارید و وصف اونو گفتید در حقیقت هر کس که با شما طرف بشه بیسلاهه و صفت مردان نیست که به روی مرد بیسلاهی شمشیر بکشه وجود این اگر خیال جنگیدن با اون را از سر بدر نمی کنید بدونید که اول باید نعش مرا به زمین بندازید پادشاه زنگیان که شمشیر خود را به حالت حمله گرفته بود دستشو پایین انداخت و با صدایی پر از محبت گفت: "خیر بانوی عزیز، از این شمشیر در برابر شما هیچ کاری ساخته نیست." دختر با خنده گفت: "عجیب است، مگر همین از نمی گفتید که این شمشیر کوهی از فولاد رو بدونیم کنه که شمشیر خود را کشیده آماده دفاعی ایستاده بود گفت خیر خیر شمشیر منم از شمشیر او چیزی کم نداره هر دو سلاهامون مساوی است من دشمن او هستم و او میتونه به روی من شمشیر بکشه اون وقت خطاب به پادشاه زنگیا گفت یالا آماده باشید که حمله را شروع میکنیم پادشاه زنگیا با لحنی که بیش از پیش مهربان و پدرانه بود گفت احسن بر توی جوان من غیرت و مردانگی تو رو تحسین میکنم اگر دشمن سعادت من نبودی حلقه غلامیت رو به گوش میکشیدم اما اگر چه خیال کشتن تو رو در سر ندارم با وجود این آگاه باش که کوچکترین تماس بدن تو با این شمشیر تنها یک ندیجه دارد و آن مرگ آنی توست شاهزاده و پادشاه زنگیان به رسم مردانی که با شمشیر می به علامت سلام دسته شمشیر را تا جلوی پیشانی خود بالا بردند و آنگاه هر یک دو قدم به عقب برداشتند و حمله را آغاز کردند اما نبرد آنها آغاز و انجامی نداشت چرا که در همون نخستین حرکت بر اثر اشاره کوچکی که پادشاه زنگیها در نهایت احتیاط به شمشیر شاهزاده کرد شمشیر او چون تیغهی که از شیشه ساخته شده باشه خورد و هزار تکه شد و برخاک ریخت. پادشاه زنگیها ها خنده بلندی کرد و گفت بسیار خوب، حالا چی میخواید بکنید؟ شاهزاده عبروهاش رو به هم کشید و جواب داد. شمشیر من شکست و این کار در قاموس مردان جنگی معنای شکست میده. میبینید می بینید که جلوی رویتان ایستاده و این طور با چشم تحقیر و تنفر نگاهتان می کنم. پادشاه زنگی ها گفت منظورت اینه که هنوز سر جنگ داری؟ شاهزاده گفت چه سؤال بیهوده ای معلومه؟ پادشاه گفت نه جنگ بیمناست پیروزی با شماست این شمشیر هم برای من کاری انجام نمیده. شاهزاده که آماده مرگ شده بود با تعجب سراپای شاه رو برانداز کرد. گفت منظورتون چیه؟ من دشمن شما هستم با هم جنگیدیم و شما شمشیر منو رو از دستم گرفتید طبق رسب یا باید من رو به عنوان برده خود قبول کنید یا هر طور که دلتون میخواد بکشید. من به بردگی شما تندر در نمیدم. آماده هستم پس چرا منو نمیکشید؟ پادشاه شمشیر خود رو هم به روی چمن کنار شنل پرتاب کرد و گفت گیرم شما رو کشتم. اگر این کار برای اونه که نظر شاهزاد خانم به طرف من جلب بشه خیال خامیه. چون که این عمل بیشتر از پیش اونو از من متنفر میکنه. جوان شما هنوز برای فهم این مسئله خیلی وقت دارید. شاهزاده گفت من این مسئله رو کاملا میدونم تعجب من از اینه که خیال می کردم شما از درک این نکته اجزید پادشاه زنگی ها مدت درازی به فکر فرو رفت و اون وقت آهی کشید و گفت عجیبه خیال میکردم کردم به بهای این سگنج گرام بهایی که دارم حتما به خوبی قلب شهازاده خانم رو برای خود خریداری می کنم. چه اشتباه بزرگی بود. شاهزاده گفت ولی اشتباه شما با اشتباه من که خیال کرده بودم با این سندلهای پاره و این شنل پروسله و این شمشیر شکسته خواهم توانست. شاهزاده خانم رو نجات بدم قابل مقایسه نیست. تا دنیا دنیاست هر کسی این ماجرا رو بشنوه من رو ریش خند میکنه. پادشاه گفت بله ما هر دو اشتباه کرده بودیم ولی حالا از شما تمنا میکنم. منو عف کنید و دست دوستی رو که به طرفتون دراز کنم پس نزنید. شاهزاده گفت: آیا جسارتی که به قبله عالم پادشاه آفریقا کرده هم خواهید بخشید؟ استدعا کنم مرا ببخشید و این معما را برای من حل کنید که پیروزی نهایی با کدام یک از ما دو نفر است؟ بالاخره از ما دو نفر کدام یکی تونسته شاهزاده خانم رو به خونه خود ببره؟ پادشاه سرش رو به زیر انداخت و گفت معلومه چه سؤالیه که میکنید پیروزی حقیقی با شماست شازد خانم به خانه شما خواهد اومد من دیگه به شهر خودم به آفریقا برمیگردم و همیشه خواهان سعادت و خوشبختی شما هستم قلب من از کوه فولاد هم سختتر بود و شمشیر شما که نمیتونست ترکی از درخت ببره به آسونی قلب من در هم شکست سعادت من باشید و به جای هدیه عروسی این صندل و این شنل و این شمشیر را از پادشاه آفریقا قبول کنید. امیدوارم که با داشتن این سه گنج گنج چهارم خود را همیشه از دست دستبرد اهریمن محفوظ نگه دارید. با وجود این، اگر روزی دشمن قویتر از این سه حربه بینظیر سعادت شما را به خطر افکند، بدونید که من و هزاران هزار زنگی شهر من برای مردن به خاطر زندگی شما آماده هستیم اون وقت پادشاه زنگیا که دل و روحش از آفتاب سفید تر بود روبه شهازاد خانم کرد و گفت برای پذیرایی از شما در بین جنگل سرسبز کشورم قصری عظیم از مرمرهای سپید سفید بنا کرده بودند. این قصر حالا متعلق به هر دوتای شماست گاهی با کمک این صندلا به شهر من بیایید و منو از دیدار خود و فرزندانی که خواهید داشت شاد کنید شاهزاده گفت خدایا خدایا این مرد چقدر بزرگ است دختر خم شده از باخچه گل سرخی چی اون رو به سینه پادشاه زنگی ها زد و گفت در پیشگاه شما من گناهکار و شرمسارم مرا ببخشید شما را به خدا مرا ببخشید بزرگواری شما از هر سلاحی مخوفتر است اون وقت سر خود را به سینه پادشاه زنگیها ها گذاشت و با صدای بلند شروع کرد به گریستر. پادشاه زنگیان که ناگهان چنان پیر و شکسته شده بود که انگار یک قرن از عمرش گذشته مثل پدری مهربان موهای شاساد خانم را نوازش کرد و گفت دخترم برای من همین اندازه پیروزی کافی است که میبینم مرا دیو سیاه بطینت خطاب نمی کنید